بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بندغان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان گران قدر برنامه عقیده در قرآن و سنت باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و در داری این برنامه که برنامه هشتمی هست موضوع برنامه توحید یا یکتاپرستی هست بسم الله الرحمن الرحیم خود کلمه توحید چی معنا کلمه توحید در لغت از اصل یا وحده گرفته شده که واو دال کلمه وحدہ در وقتی که عرب ها استعمال میکنن به مانای یگانه به مانای انفراد به مانای قط مثل مانند و به معنای قط شریک و همتاست وقتی میگیم وحده فلانن فی نسبه فلان نفر یگانه هست در نسبش در نسبش کسی مثل از وارمو نسب عالی ندانه اگر در قوتش میگیم اگر میگیم که کسی ای... کوی نداره به این شکل کلمه وحده استعمال میشه و کلمه توحیدم از این وحده گرفته شده خاطر ازی که ما وقت میگیم توحید یعنی الله جل جلوه یگانه هست بین نظیر است. مثل است، بمانند است و صفاتش، ذاتش همه به انفراد و یگانگی توصیف میشن توحید در اصطلاح چی را میگن؟ توحید در اصطلاحی است که ما به یگانگی الله جل جل در ذاتش، در افعالش یعنی ربوبیتش در عبادتش یعنی الوهیتش، و در نامها و صفاتش یعنی در یگانگی الله جل جلهو، ای که الله یگانه هست ذاتش یگانه هست صفاتش یگانه هست افعالش یگانه هست و عبادتش یگانه هست یعنی الله جل جلوه را در تمام ازی امور یگانه عقیده بکنیم که کسی را شریک نسازیم با ذات الله جل جلوه شریک و مانند نیست. کسی مثل ذات الله جل جلوه نیست. و آنچه که مخلوق در ذات خود دارم، مثلا من در ذات خود فکر می میکنم. من انسان هستم، مخلوق هستم. پس دست من با این ساختمان فیزیکیش دست یک مخلوق است از گوشت، خون، پوست، استخوان ناخون جور شده. پس این دست یک مخلوق است جسم ما جسم یک مخلوق است، پس ذات من ذات مخلوق است. اما وقتی که در ذات خالق فکر میکنیم الله جل جلوه ذات یگانه هست. هیچ مشابهتی با مخلوق نداره. اگر یاد الله جل جلوه دست الله جل جلوه که در قرآن گفته که ید الله دست الله ما هیچ وقت نمیتنیم که یاد الله با یدی دست خود تشبیه بکنیم. اگر تشبیه بکنیم اینجا شرک ایجاد میشه. پس الله جل جل ذاتش یگانه هست. مثل مخلوقات نیست. ای که چیگونه هست؟ الله اعلم و کیفیتی الله با کیفیت میفعیم. ما کیفیت شنافه ما عقیده داریم که الله جل جل ذات یگانه هست. در ذاتش، در صفاتش در همه چیز. لکن ما ذات الله جل جل حود تصور کرده نمیتنی ما اگر هر در تصور میکنیم چاینک چه قسم است؟ چاینک دیگه که او مخلوق است او را تشبیه میکنیم. از این خاطر ما در ذات الله جلجلوه میگیم که ذات یگانه هست. مشابه با ما نیست. دسمه مخلوق است، سر مخلوق است، چشم ما مخلوق است، اعضای بدن ما مخلوق است. اما الله جلجلوه ذاتش هیچ نوه مشابهتی با مخلوق ندارد. صفات ما اینگه پس که انشالله بازیده مفصل درباره باره از اونا صحبت خواهد کردیم. خب، آلم این سره ای که حکم فرا گرفتن توحید چیست؟ مثلا بسیاری کسا شاید بر شما سوال پیدا شوه که امی برنامه را که شما ساختین یا کتاب در عقیده نوشته میکنین. اگر این یک مسلمان نفهم و من مسلمان هستم کلمه میخوانم وقتی که من مسلمان هستم و کلمه میخوانم پس بر برمه چی؟ نیاز است که من علم توحید بخوانم. نخیر برادر عزیز خواهر گران قدر. هر چیز را که انسان با او خود یا عبادت میکنه یا یک کار را میکنه از دیدگاه شریعت اسلامی اگر شما تجارت میکنین. بالای یک تجار فرض عین است. ببینین بالای یک تجار فرض عین است. که احکام معاملات تجارت باید بفهم از دیدگاه ای اسلام در غیر مبتلا به سود میشه مبتلا به حرام میشه در وزن در متر کردن در معامله کردن در گذاشتن پول در بانک مبتلا به حرام میشه پس اینال وقتی که یک انسان تجارت میکنه فقهای اسلام میگن که بالای ام انسان فرض است که باید احکام معاملات و احکام تجارت از دیدگاه اسلام باید بفهمه. د غیر از مبتلا به حرام میشه و تجارتش حرام میشه و پولش حرام میشه. ای نمیشه میشک ما مسلمان هستم خلاص وقتی من تجارت میکنم نه خیر تو که مسلمان هستی بالای تو لازم است و فرض است که باید احکام از رو بفهمی. به شکل اگر شما نماز میخوانین نماز میخورین. فقهای اسلام میگه وقتی که ما نماز می بالای اینمین همین نمازخان بالای تو نمازخان بالای نماز بالا من نمازخان فرض است که باید احکام نماز رو بفهمی اگر احکام نماز رو نفهمی از پیشت فرض ساقط میشه نمازت باطل میشه و تو نمیفهمی اگر تو حج میری احکام حج بالای تو فرض است یک هاج میری در روزی که باید در عرفات باشه و وقف در عرفه فرض است و این قرار در تواف مصروف است بس اینجا حج ازی نشد. سر ازی سال باید حج بکنه. لیکن این بیچاره چون نمی فکر میکنه بالا حج شد. حتی اگر یک نفر ازدواج میکنه شما ازدواج کردین. احکام ازدواج بالای شما فرض است که او یاد بگیرین. الفاظی که از زبانتان خارج میشه ای فرض است که باید بفهمین. بسیاری کسا هستند. امیال در زندگی ما میبینیم؟ خانم خودم میگه که تو طلاق هستی طلاق هستی طلاق هستی سه سنگ طلاق هستی برای از خانمم مدگه تو رو کار ندارم با سه سنگ چی که به صد سنگ طلاق هستی برای و پس یک ساعت نرمال نورمال دبان خانه خود زندگی میکنن و با ایزن خود به شکل حرام زندگی میکنن به خاطر کویزان است که ایورا رو طلاق داده پس اینال اینمی قسم وقتی که برای ازدواج فامیدن احکام ازدواج بالای انسان فرض است. بسیاری کسا ازدواج میکنه احکام ازدواج را نمیفهمه. چی که پس ما ولی ازدواج کردم به خاطر که نیم ایمان ما تکمیل شود. لکن کار میکنه که امون نیم ایمان دیگه شم از بین میره. پس اینا حال ما چی باید بکنیم؟ وقتی که برای تجار فهمیدن معاملات تجارتی از دیدگاه اسلام فرض است، فرض عین سرش که باید بفهمه، غیر از او این به حرام مبتلا میشه. برای نماز خوان فرض است که باید احکام نمازا بفهمه در غیر زو نمازش باطل میشه نمازش غلط میشه پس باز این مگه من نماز خوانم برای حاجی احکام برای هر چیز خب الان بیاین بگوین که از کل چیز چی اهمیت زیاد داره اهمیت از کل چیز که عقید زیاد اهمیت داره پس وقتی که ما شما میگیم که ما موحد هستیم یک تا پرست هستیم بسیار خوب است موحد هستیم یک پرست هستیم آیا ذات الله جلاله جل را و صفاتش و عبادتش میفهمیم؟ افعال الله جل جلاله را میفهمیم؟ کدام افعال مخصوص الله جلاله جل را هست؟ بسیاری کساست مثلا 50 ساله شده و میگه من مسلمان هستم کدام افعال مخصوص الله جلاله جل را هست؟ میگه نمیفهمیم چرا نمیفهمی؟ به خاطر ازی که این فهمید که اینمی سرش فرض عین است که باید این احکامه که اینا عد عقل مبتلا به شرک نشن مبتلا به کفر نشن مثلا شما ببینید که خلق کردن خالق الله جل جلاله است پس خلق کردن هو الذی و یمیت الله جل جلاله ذات است که او زنده میکنه و میمیرانه آلوی سری کسا شما سعیل کنین پنجاه سال شست سال است که مسلمان است، لیکن میره پیش یک مخلوق شاید شمشیره تو بر من بچه بتی تمیم انصار تو بر من دختر بتی فلانی شخصیت تو بر من پسر بته. آیا اینمی مخلوق ولو که هر قدر رد بهش بلند باشه همین فیل مخصوص الله هست یا مخصوص مخلوق است؟ پس وقتی که فیل الله را مخصوص مخلوق ساختی در این صورت شرک در افعال الله جل جلوه ایجاد شد و شرک انسان از دایری ایمان میکشه کشه و بیسیاری کسا مشرک میشن و نمی فهمه که م در شرک مبتلا هستم چرا مشکل اساسی ازی است که همی انسان متاسفانه وقت نداده که عداقل عقیده توحید بفهمه از این خاطر برادرای عزیز خواهرای محترم شما باید ای برنامه ما که ما به خاطر ازی که مسئولیت خود در مقابل شما رفع بکنیم ای برنامه را برتان ساختیم شما باید ای برنامه را خوب دقیق بشنوین و شما باید کستاب و سیدی های ازیر پیدا بکنین و در خانه بشنوین و یک یک سرش فکر بکنین سر هر جمله که ما برتان میگم شما فکر بکنین تا ای که عقیده را مطابق قرآن و سنت بسازیم آیات قرآن بر ما کدام افعال مخصوص الله جل جلوه دانسته؟ بسیاری کسا میگه من به عبادت الله جل جلوه مصروف هستم من مسلمان هستم و یکتا پرست هستم شما عدیقل ببینین امی انسانه که میگه من مسلمان هستم و مؤمن هستم و میره در یک قبر سجده به صاحب قبر میکنم خیلی است و بگذارین نام های عجیب و غریبه بگذارین عدیقل صادقانه و دوستانه برین پیش یک عالم پرسان بکنین که آیا سجده عبادت است؟ بر عالم میگه بلی سجده عبادت است. آیا عبادت کردن سجده کردن بر مخلوق جایز است؟ برای بر ملائکه ها؟ ها الله جل جلو گفت که و از قال ربک للملائکه تسجدوا لادم شما سجده کنین بر آدم عمر الله بود. برادرای یوسف علیه السلام بر یوسف سجده کردن در شریعت زنا بود اما آیا محمد صلی الله علیه وسلم و, و ما که محمد صلی هستیم آیا ما سجده احترام حق داریم مثل زنا وره بکنیم؟ نه خیر قرآن مشان و سنت رسول الله صلی ما علیه وسلم که در اسلام در شریعت ما سجده احترام هم نیست سجده کلش سجده عبادت است پس آیا ما حق داریم به یک مخلوق رو کو بکنیم حق نداریم سجده بکنیم حق نداریم زبح حیوان در مقابل قدم های عروس یا در مقابل حاجی یا در مقابل بت یا در مقابل زیارت آیا ای جواز داره فقهای اسلام فقهای احناف چی میگن فقهای احناف میگن که امی گوشت از که در زیر پای یک کس امی مرغ زاب همیشه یا گوسفند زاب میشه امی گوشتش در حالت مخمسه هم خورده نمیتونه مخمسه چی حالت است مثلا یک نفر از گوشتنگی میموره گوشت خوک میتونه بخوره گوشت خوک میتونه بخوره اما امی گوشتی که زیر پای به بغ... غیر از نام الله حلال شده اند زیر زیارت یا در زیر پای یکس یک حلال شده در مقابل مخلوق حلال شده اگر از گوشتنگی میموری ام امی گوشت خورده نمیتونه اینقدر حرمت ازیقوی سویقدر این مورد هست چرا که در کار کار شرک آمیز اینجا صورت گرفتن پس اینال ما چطور مبتلا در شرک نشیم ما چطور افعال الله جل جل رو بر مخلوق نسبت نتیم ما چطور صفات الله جل جل رو با تنها به خالق عقیده بکنیم ما چه قسم خالق خود بشناسیم دارای ذات الله جل, جل جل و صفات الله جل جل, جل. بعضی کساست میگ ما مسلمان هستم میره پیش یک مخلوق چرا این کار کردی؟ والا یک حدیث ضعیف موضوعی ساختگیره پیدا کرده که در چیست؟ این حدیث موضوعی است که علمای حدیث میگنی که موضوع هست که ما وسعنی اردی ولی سمایی ولیکن وسعنی قلب و مؤمن من نگنجم در زمین آسمان ترجمهش کردن لیکن بگنجم در قلوب مؤمنان اِتار حدیث و ای ترجمش علامه اومه میگن که ای حدیث حدیث ساختگی و دروغی هست کذب کذب علی النبی صلی الله علیه و سلم دروغ برای پیغمبر اسلام گفته شده پس یک تودت مردم میگه اینه در قلب فلانی شیخ العیاض بلا الله جل جلاله هست ما هم میرم با او سجده میکنم کنم به خاطر اینکه در العیاض بالله آیه ذات واحد یک تا در قلب یک مخلوق جای میگیره استغفر الله العظیم حکم فرا گرفتن توحید، یاد گرفتن توحید فرض از بالای هر مسلمان مؤمن موحد ببینیم، یکی یاد گرفتن به شکل تفصیلی و دقیق تخصصی است و یکی به اندازی که هر مسلمان که ولو گلکار باشه، نجار باشه، متعلم باشه، مهندس باشه، انجینیر باشه، داکتر باشه، برای کل لگی و هر انسان، زن و مرد، بر دیگه این اندازه سر هر مسلمان فرض است که عدعقل وحدانیت الله جل جل هورا صفات الله جل جل هورا عبادت الله جل جل هورا تخصیص عبادت الله جل جل هورا معنای کلمه خود می اندازه بفهمه که در شرک داخل نشه. و به تفاوتی در قسمت سبب عظیمشه که بسیاری از مسلمان ها احیانا در شرک داخل میشن و کار میکنن ضد توحید و خودش بیچاره چرا و باز مشکل چی چیست؟ چون امی عقیده خدا از قرآن و از سنت نگرفتن ادعاقل که بشینه گوش بگیرن برنامه یک کم دقیق اگر یک نفر یک مرتبه شما اگر برنامه از اول تا با آخر بشنوین تمام ببخشای عزیز انشاء الله تعالی از تمامی مشکلات شرک خلاص شده و منیس یک انسان موحد و یکتا پرست تا آخر زندگی میتونی زندگی بکنی لکن بعضی کساس وقت نمیتن بعضی کسارا شیطان نمیمانه تعصب برش میکنه گوش نگی این ستیا گوش نگی از قران براد گپ زده ال اعوذ بالله یعنی وقتت آیاتی قران بریش بخوانی هو الله أحد الله الصمد میگه هو الله احد گوش نگی کی گمراه میشی یعنی ال اعوذ بالله قران آیاتی قران, قرآن ال بالله ال اعوذ بالله و السلام علیکم ورحمه دان بسیار گپ خطرناک است از خاطر اگر يك انسان اخلاص بسیار خوب داره الله جل جلاله برما و شما اخلاص نصیب بکنه که رجوع بکنین به قران مهمیت توحید چه قضیات است. از این خاطر بالای ما فرض عین است که حتی اقل امی اقسام توحید باید بفامیم. اقسام توحید. و اقسام توحید ما کوشش میکنم آنقدر برتان آسان و واضح تشریح بکنم که ولو که برادر عزیز و خواهر محترم که هیچ علف و را از رویم خوانده نتانی امی گپار بفامیم. علما گفتن که توحید سه قسم است. سه قسم هست. من کلمه عربی شام میگم و معنای فارسی شام برتان بگم. مهم نیست کلمه عربی از رو یاد بگیری. لکن مهمی است که این مفهوم از ای بفهمی و مطابق از 24 ساعت زندگی بکنی. پس توحید سه قسم است. یکی توحید این توحید ربوبیت میگن. چی مانا توحید ربوبیت؟ توحید ربوبیت یعنی توحید در افعال الله جل جل هم دو قسم افعال هست خب فکرتان نمیگرین و ما بسیار کوشش میکنم ساده و آمیانه گپ بزنم ما بره مردم که تحصیل کرده هستن و میفهمن زیاد سر از اونا ترکیز نمیکنم چون او آمیانه را هم میفامن و گپ های دقیق و لغت های سخت هم میفهمه لیکن من میخوایم لغت های آسان آسان کلمات آسان آسان تا که بسواد بفهمه انشان و بسواد خو خود خود به خود ست فی میفهمه خب. اول گفتیم توحید روبوبیت توحید روبیت چی را میگن؟ توحید افعال الله جل جل هم شاید شما بگن که توحید افعال یعنی چی؟ یعنی دو قسم فعل است یکی فعل مخلوق است فعل مه است خوردن فعل هست نوشیدن فیلمه هست خواب کردن فعل هست یکی است که مخصوص خالق است افعال مخصوص خالق و افعال مخصوص مخلوق افعالی که مخصوص خالق است به ذات و به عظمت خالق شایسته هست خلق کردن است شفا دادن است زنده کردن است میراندن است این افعال مربوط به کی میشه به خالق میشه و یکی افعال مخلوق هست که افعال ما مي... بیچاره هست که به عاجزی و به ناتوانی نا مشایسته شایسته هست ما بدون خواب زندگی کرده نمیتانم اما الله جل جل به خواب نیاز داره على عیاض بالله به شان و به عظمت بزر لا تاخذه سنت ولا نوم الله جل جل رو نه پینگی میگیره و نه خواب پس اول قسم توحید توحید افعال است. باز اینه ما مفصل تشریح میکنم اما قبل این که توحید ربوبیت به معنای توحید افعال است. یعنی افعال الله جل جلجلوه شایسته ذات الله جلجلوه است که به کمال و عزت و عظمت الله شایسته هست. و ایک افعال مخلوق است که ما هستیم. افعال مخلوق است که ای افعال عاجزی و بیچارگی است. خوردن، نوشیدن، خواب. شدن مریض شدن، پینگی بردن این کلش است. پس ما نباید افعال خالق با افعال مخلوق گت بکنیم. او فعلی که شایسته الله نیست، او را به الله نسبت بتیم و او فعلی که شایسته الله است، او را به مخلوق نسبت بدیم. ابداً. پس باید افعال الله را بفهمیم و افعال مخلوق. اینمی فهمیدن شناخت افعال الله جل جلاله، اینمی افعال الله جل جلاله ربوبیت میگن که اس کلمه رب گرفته شده یعنی افعالی که مخصوص بر رب است به خالق است و این افعال مخلوق کرده نمیتونه از این خاطر ایر توحید ربوبیت این قسم اولش هست باز سر توحید ربوبیت ما شما برنامه مشخص و درس مشخص داریم قسم دومش توحید الوهیت است توحید الوهیت چه یعنی توحید عبادت که هر چیزی که او را قرآن سنت بر ما عبادت کفته مطابق ایا که نعبدو خاص به الله او را بکنیم یعنی خاص الله را عبادت میکنیم این توحید چی میگن توحید عبادت میگن و قسم سومش توحید اسما و صفات است یعنی توحید نامهای الله جل جل و صفات الله جل جل الله جل جل دارای چی صفات است که او صفات ما باید به مخلوق نتیم ما از صفات عاجزی داریم الله جله جلو صفات عظمت داره پس ایره توحید اسما و صفات میگن پس ما سه قسم توحید داریم توحید افعال توحید عبادت و توحید اسما و صفات توحید افعال توحید ربوبیت میگن توحید عبادت توحید الوحیت میگن و توحید اصما و, و صفات میگن که الله هر کدام ازیاره در برنامه های مشخص چیگه سر هر کدامش در چندین برنامه تا اینمی اقسام کلش ما بفامیم در برنامه بعدی الله، به خدمت شما دوستان تشریح و توضیح هم کرد الله جل جلو همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که ذات الله جل جلو را با صفاتش و با عبادتش بشناسیم ومن حيث انسان با اخلاص موحد مطابق از اولمو مطابق قرآن والسنة مطابق عقيدة قرآن والسنة 24 عرصات در سندگي خد اهم عقيدة داشتباشم و اهم عمل بکنیم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته